پیش از برود به کالبد درونی خیش ببخش وقتی میخواستم توجه خود را به کالبد درونیم مطف کنم احساس خوبی نداشتم احساسی داشتم مثل تشویش و تعب. بنابراین این من نتوانستم چیزی را تجربه کنم که شما در برآی سخن گفته اید. تو چیزی را احساس کرده ای که پیش از آن در تو بوده است و تو از آن خبر نداشته ای. به محض این که توجه خود را به کالبد خیش معطوف کرده ای آن را دیدی. توجه کردن به کالبد درونی به معنای فکر کردن درباره آن نیست. بلکه به معنای آن است که احساسات خود را مشاهده کنی آنها را احساس کنی و آنها را همانطور که هستند به رسمیت بشناسی و بپذیری بعضی از احساسات را می توان به سادگی شناخت خشم ترس اندوه و غیره بر بعضی دیگر از احساسات دشوارتر می توان بر نهاد آنها ممکن است فقط احساسی مبهم از ناراحتی گرفتگی و غیره باشند چیزی بین یک احساس عاطفی و یک احساس فیزیکی در هر حال مهم آن نیست که آیا می توانی برچسبی روی آن بچسبانی یا نه مهم آن است که آیا می توانی آن احساس را تا جایی که ممکن است به سطح آگاهی خود بیاوری عطف توجه کلید دگرگونی بنیادی است و توجه دقیق و کامل حاکی از پذیرش نیز هست توجه به پرتو نور میماند نیروی متمرکز آگاهی تو که همه چیز را به خود تبدیل می‌کند در اندامی که سالم است و درست کار می‌کند احساس عمری کوتاه دارد به حباب یا موجی میماند که بر سطح اقیانوس هستی ظاهر می‌شود و سپس محو می‌شود اگر در کالبد خود نباشی ممکن است یک احساس بتواند برای روزها و هفتهها در تو باقی بماند و یا اینکه با احساسهای دیگر درآمیزد و به دردمندی بدن تبدیل شود مزاحمی که سالهای سال در تو خانه میکند از نیروی تو تغذیه میکند موجب بیماریهای جسمی میشود و سرانجام زندگی تو را به افلاس و فلاکت میکشاند بنابراین توجه خود را به احساس خود معطوف کن و ببین آیا ذهن تو به الگوهای گلای آمیز مانند سرزنش احساس دلسوزی نسبت به خود و یا بیزاری چسبیده است؟ اگر وضع چنین است پس تو هنوز نبخشیده ای عدم بخشش ممکن است متوجه خود و یا دیگران باشد اما گاهی نیز متوجه وضعیت ها و شرایط گذشته حال و آینده می شود؟ و این نشان می‌دهد که ذهن تو از پذیرش و تسلیم تفره می می‌رود. آری، می توان نسبت به آینده نیز حالتی از عدم بخشش داشت. در این حالت، ذهن نمیتواند عدم قطعیت آینده را بپذیرد و از پذیرش اینکه آینده در کنترل ما نیست، تفره می می‌رود. بخشش به این معناست که شکوه و شکایت را کنار بگذاری. و از شر اندوه خلاص شوی. بخشش هنگامی اتفاق میافتد که بفهمی که شکوه و شکایت تو چیزی را عوض نمی کند. جزان که احساسی از یک خود دروغین را فر بهتر کند. بخشش یعنی عدم مقاومت در برابر زندگی یعنی اجازه دادن به زندگی که در تو زندگی کند. در مقابل بخشش چه چیزی قرار دارد؟ در دو رنج؟ جریانی حقیر از انرژی حیاتی و در بسیاری از موارد بیماری جسمی به محض آنکه حقیقتا میبخشی نیروی خیش را از ذهن پس میگیری عدم بخشش خاصیت اصلی ذهن است ذهن نیز مانند نفس که ساخته و پرداخته ی ذهن است نمیتواند بدون درگیری و خصومت باقی بماند ذهن از بخشیدن عاجز است فقط تو می توانی ببخشی. تو در کالبد درونی خیش حضور می آبی، احساس سکوت و سکون و آرامش می کنی و به هستی وصل میشوی. به همین دلیل بود که مسیح گفت ببخشید پیش از آنکه که به معبد درایید رومی نیز در دیوان قزلیات خود میگوید تو موسای جان خیشی و با هستی پیوندی ذاتی داری چرا شبانی خصلت‌های های ساخته و پرداختی ذهن خیش را پیشه خود ساخته ای؟ نفس را از پا بیرون آور خود دروغین را کنار بگذار و با پایی برهنه و جانی فارغ از پندارهای باتل به دشت مقدس یا و ساکن کالبد درونی خود شو تکهگاه تو هستیست نه اصای ذهن اصای ذهن را بیانداز. اگر فرعون هوا و نفس زنده شدند با توجه به ذات خیش که با همه چیز و همه کس یگانه است در گردن او زنگله کن آن را مشاهده کن و بشناس اتصال تو با باطن هستی و یا ذات غیر متجلی رابطه ی حضور و کال بود درونی چیست حضور آگاهی ناب آگاهی که از ذهن و دنیای صورتها باز ستانده شده است. کالبد درونی تو، حلقه اتصال تو به باطن هستی و یا ذات هستی است. همان ذات غیر متجلی، منبعی که آگاهی از آن می ترابد. همانطور که نور از خورشید ساطه می شود. بیداری نسبت به کالبد درونی، همان آگاهی است، که اصل خیش را شناخته و به با آن بازگشته است آیا ذات غیر متجلی همان هستی است آری ذات غیر متجلی همان ذاتی است که ورای نام و شکل و توصیف است به این کلمات نچسب و سعی نکن از آنها باور بسازی این کلمات چیزی بیش از نشانه ها نیستند شما گفتید که حضور همان آگاهی است که از ذهن باز ستانده شده است چه کسی است که این آگاهی را از ذهن باز می ستاند تویی که آگاهی را از ذهن باز می ستانی. اما از آنجا که تو در ذات خویش همان آگاهی هستی ای برادر تو همه اندیشه‌ای به تعبیر مولانا پس میتوان گفت که باز ستاندن آگاهی از ذهن همان بیداری آگاهی از خواب صورت هاست این حرف بدان معنا نیست که صورت و شکل تو ناگهان در انفجاری از نور ناپدید می شود تو می توانی در همین شکل و صورت به حیات خیش ادامه بدهی و با وجود این نسبت به بیشکلی و نامیرایی جان خیش آگاه باشی باید بپذیرم که آنچه شما میگویید ورای فهم من است اما در دلم احساس می کنم حرفهای شما را میفهمم. این فهم چیزی شبیه احساس است. آیا من خود را گول میزنم؟ نه، تو خود را گول نمیزنی. احساس دسترسی بیشتری به حقیقت دارد تا فکر: من نمیتوانم چیزی به تو بگویم که تو پیشاپیش آن را در جان خیش ندانسته باشی. وقتی به مرحله ای از اتصال درونی می رسی به محض شنیدن حقیقت آن را میفهمی و میشناسی. اگر به این مرحله نرسیده باشی تمرین آگاهی از کالبد درونی میتواند به حس تو ژرفا ببخشد کانت کردن روند پیری در ضمن بیداری نسبت به کالبد درونی فایده های جسمی بسیاری نیز دارد یکی از این فایده ها کند کردن روند پیری جسم است در حالی که کالبد ظاهری تو پیر و پژمرده می شود کالبد باطنی تو در معرض زمان قرار نمی گیرد و هرگز دگرگون نمی شود اگر در حال حاضر 20 سال هستی میدان انرژی کالبد باطنی تو در هشتاد سالگی نیز همین خواهد بود به همین نیرومندی و شادابی به محض که شیوه معمول زندگی تو زیستن در بیرون کالبد خیش عوض می شود و ساکن درون کالبد خیش می و در لحظه حال حضور می جسم تو نیز احساس سبکی شفافیت و سرزندگی می کند هرچه آگاه تر می شوی، تراکم مولکولی بدن تو نیز کمتر می شود آگاهی بیشتر به معنای برداشتن بار توهم مادیت از دوش جان است هنگامی که با کالبد درونی بیزمان خیش یگانه تر هنگامی که حضور حالت طبیعی آگاهی تو می شود و گذشته و آینده دیگر بر تو چیره نیستند آنگاه دیگر در روان و سلول های بدن خود زمان ذخیره نمی کنی زخیره سازی زمان به عنوان بار گذشته و آینده از توان خود نوسازی سلول ها به شدت می کهد. بنابراین اگر ساکن کالبد درونی خیش باشی روند پیری کالبد بیرونی تو کنتر می شود و حتی وقتی که پیر می شود با ذات بی زمان تو از خلال آن میدرخشد و به تو جلوهای جوان و شاداب میبخشد آیا این مدعا شاهدی علمی هم دارد امتحان کن آنگاه تو خود شاهدی بر مدعای من خواهی بود تقویت سیستم دفاعی بدن فایده دیگر ساکن شدن در کالبد درونی تقویت سیستم دفاعی بدن است هرچه بیشتر جریان آگاهی را به کالبد خیش بریزی سیستم دفاعی بدنت نیرومندتر عمل خواهد کرد چنان که گویی هر سلول بدن تو بیدارتر میشود و به رقص در میآید بدن تو توجه تو را میطلبد و آن را دوست دارد در ضمن این کار شکلی مؤثر از شفای خود است بیشتر بیماریها وقتی به درون تو میخزند که تو در بدن خیش حضور نداری وقتی ارباب در خانه نیست، اشباه در خانه او ساکن میشوند. وقتی تو در خانه بدن خیش حضور داری، برای میهمانان ناخوانده دشوار است که وارد خانه تو شوند. البته فقط سیستم دفاعی بدن ما نیست که در اثر ساکن شدن در کالبد خیش تقویت می شود. سیستم دفاعی روان ما نیز بدین سان تقویت خواهد شد. تقویت سیستم روانی تو موجب می شود که نسبت به حوضه های نیروهای منفی ذهنی عاطفی دیگران که بسیار مصری نیز هست، مسئولیت پیدا کنی. چون نیز که ساکن شدن در کالبد خیش با قرار دادن سپری پیرامون تو از تو محافظت کند بلکه با بالا بردن فرکانس میدان انرژی تو این کار را می کند. آنگاه، ترس، خشم، افسردگی و غیره که فرکانسی پایین دارند دیگر نمی توانند وارد حوزه آگاهی تو شوند حتی اگر وارد شوند با مقاومت تو روبرو نمی شوند زیرا به سرعت از تو عبور می کنند. حقیقت این موضوع را خودت امتحان کن برای بالا بردن توان سیستم دفاعی بدن مراقبه ساده و بسیار مؤثر وجود دارد این مراقبه به ویژه هنگامی اثر است که تو نخستین علائم یک بیماری را در خود کشف می کنی اما این مراقبه در مواقع دیگر که کاملا بیمار شده ای نیز موثر است البته اگر به طور مکرر و با تمرکز کامل انجام شود این مراقبه همچنین اثر شکلهای گوناگون افکار و احساسات منفی در تو را خونسا می کند با وجود این مراقبه مذکور نمیتواند تواند جانشین حضور لحظه به لحظه تو در کالبد خیش شود. در غیر این صورت اثر آن بسیار زود گذر خواهد بود. مراقبه این است. آن زمان که دلمشغول چیزی نیستی دقایقی پیش از بخواب رفتن و دقایق اولیه بیداری خون آگاهی را در جوگ رگهای خیش روانه کن. چشمان خود را ببند، به پشت بخواب، بخش های مختلف بدن خود را انتخاب کن و روی آنها تمرکز کن، دستها، پاها، شکم، سینه، سر و غیره، تا جایی که ممکن است، انرژی حیاتی را در آنها احساس کن، با هر عضو از اعضای بدن خیش پانزده ثانیه حضور داشته باش. انگاه اجازه بده که توجه تو، همچون یک موج چندین بار در سرتاسر سر بدن تو حرکت کند از کف پاها به جانب سر و از سر دوباره به جانب کف پاها چند دقیقه کفایت می کند. این احساس را چند دقیقه نگه دار. در این چند دقیقه کاملا حضور داشته باش. حضوری با تک تک سلول های بدن خود. اگر گهگاه ذهن تو پادر میانی کرد و خاطر تو را از بدن خیش به فکری منصرف کرد نگران نباش به محض مشاهده این موضوع دوباره توجه خود را به بدن خیش معتوف کنید